بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سيدنا محمد الطیبین الطاهرین المعصومین الله دائم تعاظا و جلال اللهم و ارحمنا که ما در ابتدا افتداعا متعرض روایات شیعه شدیم بعد روایاتی رو که احل سنت در این جا البته هم بسه روایات سنت رو خوندیم و تا اینجا روشن شد که در در کتاب بخاری این حدیثی نیامده اما در غیر بخاری این حدیث نرو شده و یک اختلافی هم بین علمای اهل سنت هست در بر اینکه این, این حدیثوارک ناظر به باب ایمان باشه حدی باب ایمان آوردهن و یا توی باب بیت که هرس کردیم ندهی از علمای احل سنت مثل ماها مثل علمای ما تو باب بیو و بی برده این صحبت ها بودهش به بند درد یعنی این روایاتی که از شیعه در مسادر ما از سنت نهار کنم اونا هم مقرض بشیم لیکن دیرم این مقضا خود باب به اصطلافهش هست که مرموم سال و ساله به در جامال حدیث تو باب دیگری بودن تو برگرویو حالا این به مستدر کلام روی بردن. برگرده برمان برگرده کلام خودون چون مرموم شیخ همین را در مخواسه بودن در اینکه که تندیه روایت بشه علاوه از این که باید, باید مخواسه بشین متعرض دقیه روایت شیعه ده ده در درمون تیگه شد دقیه روایت شیعه که به اسطلاح در واقع غشت ذهب شده از کردید ما جنگلی از روایات داریم در احوام مختلف بین این احسانه در بین ما که انسان احساس می بحث غشت تنها نیست. اون بحث اساسی این است که در معاملات باید واضح باشه اون چیزی که انسان می یا اون چیزی رو که به عنوان پول می باید واضح باشه توش افهامی نباشه جهر نباشه اون قرح نباشه و من به خاطر اینکه این بحث پششی یه مقداری بتونه روشندتر اثر بکنه عرض کرده ما در باقی روایت داریم این رقایت از بله کتب ما هم نقل شده و در کتب آمه هم از رسول الله نقل شده لیکن این رقایتی که ما الان داریم در کتب خودمون در کتب آن موالد شدن بیشتر ناظرم به جانب تکیفی قبن و مسترسل که به شما به اصطلاح اعتماد کرد حال شما قبول کرده اگر سر رو, رو کلاه بگذاری جنت ده ازاعتمانی رو مثلا به ازاعتمان بگذاری این رو سخت شور باتیگم روا هم داریم قبن و روا ما داون روایتی که ما داریم چون من می خوام مطلب بکنم که بعد این تشریه و این گونه نشه تازه باشه ببینیم چه نتیجه گیری رو برداریم مشکلی که هست هر خل در فقه اسلامی در باب قبر روایتی رو اهل سنت در باب خيار قبل نقل نکردن چون اعتراض کرد اهل اختیار هر خیالی که رو خطر سوشه چون خلاف که اولی از خلاف که او دلیل قبی میخواد. ایلا مقصود اقوالی هم ولی یا هر عملی، هر قراردادی رو که انسان انجام میده، یه جور اعفا میشه. هر چی با او اعفا کرد. اما این که رو بیه قراردادی و فناک کنم سر دیوادی جهله لازم دیده است از آنطوری داری میخواد. ایلا اعلام معامله، مخصن تجارت انترال طرز ترازیش نه واقعا این, این طورتاً به صد هزار من, من خیلی به حالا بعد معروف کی میاد 100000 درخواست درخره گفتن اینکه تا قابل شما ای رو که ما در باب داریم دائما و علاوه در تداخلات بر قرارداد خיאد دلیل بخواهیم توفیقی الا اصل اولی بلکه اصولا دلیل نیست که از لزوم در و در اوه یک اصل عقلاقی باشه الان اصل بدون معنیه یعنی اگرم جزء اصول مسلمه دنیا الان که خود خیلی فراداده‌ای بینندیم چیزی ازش باقی شده اگر وارد قراردادی شده حق پس نداره اینکه بازم قرارداد واسه این ببره چه حقی برای اون قرارداد نمیشه حالا مخاطب بین دو تا کشور باشه مخاطب بین به اصطلاح دو تا قرارداد باشه هر باشه وقتی باشه امراضات ها رو خیلی محکم میگیرم که بسیار قابلیت فرس نده. باشید مگرد در حالا حالات خاصی که در زید شد در تبصرهای اون قانون رو آمده بود شه ایلا هم حق فرس در شاید مقدسم هم همیتون لذا از ابن حزم من توی قرم غالب نیست. یک هم در وقت بله. کار حرامی انجام داده نندا تو ایشان 100 هزار هم وقتی و قیمت۱ هزار تومنه به شما از چینان کرده صد هم کار بلی کرده کار حرام کرد مثل سخ رش کار حرام. اما هفت فست معامله نداره وم رو بود تجارت از همتراز دست میکنه که این کار را انجام ده و شبید این هم درواقع مشهول از ال مع بهوای از موم شگانی که از قدم های متعد زمان گذمد بزرگ ایشون میگه تجاردن تراز میگه حالا فراشون شما یه چیزی میگیدیم یا اینو فروخت هم دو سبتان شما خبر ندارید چیه ممکنه این جنس دهتانی باشه، ممکنه این جنس یه میگیدیم خب میگه تجاردن تراز شما راضی هم راضیم این چه مشکل داره؟ این اقتضا نمی که این معامل باطل بشه ما انشالله بحث جهز اینها رو در محل خودش و در ق دیگه از علماء که, چیه؟ که این چیه تو اینشان را اینشان توی بحثی اصولا میترد شوشیم خیلی از این مسائل رو مخصوصا دو بام رو ارز کردم بابای زیاد در فرق هست اما دو باب به طور رئیسی یکی باب شفعه و کتاب شفعه یکی هم باب خیالا این رو قالی لازر رو, رو کردم لازر خیلی نقش دارون اینجا یعنی شما این ایندهیتون در فروع باب شخه لازداره در بابش خیارات هم لازداره این شاید توضیحش هست و چند گاره ما کردیم چون مرادت خیات هم در محاول لزوم مرده لذا به یکی اصطلاحی خیارات آدتا هر خیاری یعنی هم که بالا لازدار صاحبتون میشه آدتا سناییه آدتا خیار به طور کلی دو طرفیه فقط دو طرف داره یا این معاملات قبول بکن یا نفیل شد اصطلاح خیار اینه خیار اصولا یا قبول یا امزاه حتی در بابنه ها که حاصل میگن اگر زن بگیر برناس و دیوان تحت حتی فرس هزاره نمیخواد طلاق بده این هم دو طرفیه یا میگن باید در زندگی بکن یا باید خانم زندگی نخواد حالا سه طرفی شد کنه نه ما این قانون زمینه که معامله شهر می‌کنه مثلا معامله برسه 1 میلیون تومن ما مثلا فرض کن معامله نیست معامله خرید دیوانه درآمدی دیگه این حق نداره در بابش خیارات سوناسی نیست بوده فرض در خیاره قبل هم همینطوره اگر معلوم شد این جنس سفتیه که من ده هزار به این آقا فروخته 100 هزار تومن نمیشه دیگه چیزی من این جنس نگه می‌دارم تو یه کلی برگردم ده هزار toman کوجی میشه تو تومن این حق نداره خیارات تماما کلا سناییه اصولن طبیعتا خیار جایی که قرارداد میشه به استرا موضوع تفسیر قرار قرارداد میشه بر قرارداد همیشه اون تفسیر سناییه طبق قاعده اولیه خیارات کلا سناییه طبیعت خیار اینه یعنی میگن یا امضا بکن معامله با همین سازا که من شو دوره واسه میگه به هر حال برو قرارداد خیلی عمر من میخوامش اختیار اختیار من نگاش کنم اولو بسازا پیش میگه یا امضا بکن یا فسخ یا این خانم دیوانه رو امضا بکن به همون معنی که بوده یا پس بگیر. دیگه نه من نگه میدارم با یک دهومن معنیش کم می‌کنم به خاطر جنونش نه نمی‌شه دیگه کم کردن من به خاطر جنون یه این راهی نداره در قبل هم همین ما فقط در میان خیارات یک مورد داریم. یک ثانی هم نداره. مطلق خیاره ای که ثلاثیه. یا امضا یا پس و یا طرش ما تفاوت بله کلیه خیارات ثناییه و سرش هم نقش هم که یک حدی روشن شد چون خیارات رو قاعده هم با حاله لاذرف حواله نه لاذره حالت صلات اثبات نمیکنه دقیقاً که لاذره همیشه حالت ثنایی ایجاد میکنه نه ثلاسی چون میگه یا اوفو بر ابودین عقل وفای بکن یا میگه zarar کردن خیلی خوبه نه اما اینکه ما به تفاوته بده این دیگه توش نخواید با لازره توی لازره ما به تقاوت و رضا خیار عیب هم نس داریم اگر نس نبود خیار عیب هم سنائی بود به طور کلی اگر جایی به اصطلاح اهل سنت ما میگهیم نس داریم اصلاح توقیفیه اصطلاحا اگر جایی خیار سلاسی شد توقیفیه یعنی میخواد. مخادره بارد مخادره دیگر مخادره و ایلا اگر در این نبود محتضا به قاعده همینه صدمیم که ادعای سیارات را اندازه‌ن، لازرن بیش از این اثبات نمی‌کنه. لازرن برای این که به تخمین ضرر نباشه، بیش از این اثبات یا با همین وضع موجود قبول بکن یا رد بکن با وضعیت موجود، نه این که تخصیص بکن و نصار سنجی بکن. این هم راجع به این نکته، اون چون این نکته یک نکته لطیفی است ولی کمیججا صحبت کنا چون ممکن است ما در موارد قشم هم قائل به خیال بشیم، اصلا می‌دونیم قشمی کرده توش بردش چطور؟ بعضی‌ها و خوب، گندم بد با هم آتی کرده در خوب جگه، با بر جبه، می‌گن آموزه مثلا آخرین مورد با برای تایلندی، مالندی محوطه می‌کرد، با برای خارجی محوطه کرده با هم. دیگه قرار داده، یهیم چون دستیانی شده، یه احتمال اینکه معامله درست باشه، یه احتمال اینکه معامله خاصی باشه. اگر درست باشه یه احتمال این باخیاره، که با خیاره، با, خیاره، با درست باشه اما با حق میتونه فرص و میتونه امزا تفاوت تفاول هم نه سلاثی این توضیح اینجا گفتم که بعد تو مسئله غم تو مساله رش واضحه داشت در ما در بابا قش دسته داره بابا قشن حالا قبل میگم که نزدیک قشنه پشه چون در قبل در قیمت یا مثلا در جنس به لحاظ قیمتش مثلا جنس که قیمتش ستومن بوده با کلاه از این آقا ده تومن قریده چون از این میشه از این یا جنس 100 و نگاه چون بیناه و روزه مثلا ما در باب خیال الان در روادت خودمون نداریم سنیام ندارم خیلی از علمای ما از همین راه قائدی لازر روشن شد قائ اما نشون داده میشه شواهد که احتمالاً دلیل داره که این مطلب بوده به ما نرسیده. در کتب علمای ما صفر هر نه اما میدونم راجبه خط نگید که من جاواجا کردم. چون بعد میخوام توی مسئله قاش مسئله نکته ای رو زیارت‌های اونجا متعرض بشین ان شاء الله تعالی حالا این نقش دو قدم دیگه در کتاب دائره لار پال جعفر و محمد صلوات الله علیه ما و اینم از عجایب کاره تو این عبارات جعفر معمر پیشون گفته در کیک از مصادر ما نیامده خب این البته کلا در دنیای شیعه ما مشکلاتی داره این قضیه مثلا حدیث امام صادق با کوفه و مدینه اونجا مشهور باشه حالا برها قم و مفتقدات و در هیچ کدوم از اینیم در مثلا زمانی که کتاب دارون نوشته شده هم بغداد به اصطلاح محتر بسیار به بس اصطلاح تناوری بود و محتر بزرگی بود محصبه و هم خود قوم مکتب اساسی بود لکی در بیش خود از این دو مکتب این حدیث نخر نشده قال جعفر بن محمد اذا وقع رجلان رجولان سلعتان یک کالایی رو کسی بفروشه سو مدعا نه ورات فی و فبقال نظر تو فی برنامه جی این برنامه جی برمانج برنامه جی اشتباه بود باشه نظر تو فی برنامه جی برنامه نمیسته باید همون برنامه از من من در اون برقش نگاه کردم این بریده که ماهی با مساده باشه دارن اول مزمون فرعی تو فوت تمین منسته من و قبلن بیه هم مثلا دیم قیمتشون به شونزن ستون این قیمت هزار تو بوده اشتباه که همین نقطه رو بودن قال یونزرو فی حال سلعه اون کالا رو نگاه بکن فی امکان مثلها تو بی مست از آنکه او به غریب المن مثل ما و الناس بنست تنبی او جایز این جایز در اینجا یعنی به تمامه جایز منو عبور کردن هست کلمه یعنی به معنی کردن شده و امکان امران فراهم شد توی قیمتش 1000 تومن توی قیمت بارنامش گذان 900 تومان بوده خب مشکل از 1000 در 800 مشکل نداره و امکان هم از و غبن بیندن حلفا با بالله الذي و اله الله علمت داه من الغرب اصلا میخوره که من اشتباه کردم این قیمتش 1000 تومان بوده من بهش من تومان اشتباه کردم بله ان لم او له بینه قصر میخوره اگه بیانه نشه سمه غیر مشتری اینه غیر مشتری این شعته فخولها به مبلغ سمن و این این همون خیار سناییست این خیار سنایی که گفتم همینه حالا این کمی نظر هم شده باشیم کمی واضح میزه واضح. اصل اینکه که این مطلب خیاره ثابته حالا این, این که اینجا آمده یا این باید باید. بله نبالی میاریم کمی جاوه جا یک بله مختصر جاوه جایی اما این معلوم میشه حالا با خط نظر جاوه یک حالت خیار رو اثبات میکنه در کتاب وسائل جلد دوازه شام قدیم حالا نهیمورده چون اینجا برزیادات داشت و در کتاب جامال احادیث در این به اصطلاح جلد سی و دو و سه جلد بیست و سه جلد بیست و ایوب در این جلد بیست و سه در اینجا بعضی از بحث ایوب یعنی به عنوان ایوبه اما در خش قشم هم بعد در روات هم در اینجا داره در کتاب رسائل نظام بابه هشته ای امام صادق در اینجا باب نوه در کتاب باب نوهش اده از روایات داره که چون موضوع بشیاعت اولاخه بعداً این باب 9ش به روایت سنی ها و سنی که پیش باشه محمد بن یحیی مرقوم کلینی از استادش محمد بن یحیی اتار قومی که از بزرگان عجله شده ام محمد بن حسین که ابن باشه از اونی که عطار بوده روغن فروش زیاد این روغن زیتون انا علی ابن حکم که ایشون هم از بزرگان اصحاب خواب ماست و یکی از مسادر اصلی میراث حدیثی مثل صفا نیست نبی عمر یکی از نیست که خیلی از مسادر از خواب رو نقل کرده انا محمد ابن مسلم علا ابن رویم بسیار بزرگاه جرگرد و شاگرد محمد مسلم حتی در حدود کنند تفقه حلاق یاد محمدی، یه توضیحاتش رو صاحب عکس، توضیحات به این منظورش اینه گفتم اون شده میشه. به لحاظ تاریخی بحث کردن چه کارا ندارم، ما طرق متعدد به محمد ابن مسلم داریم. خود محمد هم اسمو ولی اختلاف در استنادر به واسه طوری که اینجا نیست، یکی از طرق بسیار خوب، این رو که میگم بسیار خوب، چون معنی و حساب به عکس این تاریخ خوب نیست، تاریخی بهتر، اشرحش هم بحثی. یکی از به اساتید خوب به محمد کتاب علای معقومه علای ابن قلا قلا در اوت عرب خالد یعن صریع صریع همین مثلا اگه دروس ارور بده دروس میشه یانه بالا کرننگ میوسن ارجو میذم بشکرام به اولیها فهم میذارم که می جوشیده چه این صریع میگفته صریع اصطلاحشون همین که از آرد و شکر هیه میشه اون وقت اصطلاحا قلا خودش کسی که قردی میکنه قردی که به اصطلاحا اعواز هست به اصطلاح سرخ کردن به اصطلاح الانه مثلا مقلایی و ساید برقیتش رو سرخ میکنه به اونا میگن لیکن اینجا برای از الله چون نشید قلاع سبیر حلوه ساز بوده یعنی حلوا درست میکنه ما حلوه نرزیم ایشون شاگر محمد مسلم و کتابش کتاب علاق نزدین همتا دو اصول هم حساب شده و کتاب مشغولی داشته ما به یه مناسبت های چند نسخه این کتاب رو تعریف کردیم حالا چون یه وقت چندیز خیلی حال نداره باید دست نداره چون هم اثر نداره اونقدر تأثیر تراغان نداره این بحث باشه کنار نسخ متعددی از این کتاب وجود داشته و از کرده این کتاب نسبتا در خودش مشغوله الان هم شده. یه کتابی چاپ اصول صففت عشر ز ااصل رو در اختیار آجین نوری بوده درها چاپش کردن نام اصول سطفت ع یکی هم کتاب کتابه کتابه علاقه میخوا که میقدر میتاب داشته که الانش یک قطه از کتاب علاق ما رسیده وقتی اصطلاحاً این نسخه علییر نحکن این نسخه یر نرکم خوبه کلا آثار لییر نکن در قوم خوب بوده مشکل خاصی نداره این اثر نسخه علی نرکم از علا ابن رزید به قوم رسیده و در قم پخش شده که شیخ کلینی از اون گرفته خوبه همش خوبه ایجا موشه بخواستن اما اهده ما حالا این اهده ما یا واقعا خود مهم فراموش کرده یا که کتاب علا آمده ممکنه اشتباه به علا پیدا شده سوئله منتعام یخلط و برزهو به برز و برزهو من منبست ظاهر این حدیث مبارک بر علم عند الله در بیان موضوع اش به ظاهر اصلا همین کلام مثالش صادرش اکثر شده که تام در لغت اهل حجاز اشتباه نشده واژه در جایی ممکن است معنای دیگه بده الان در لغت عرب طعام خوراکی است به معنی طعام میگه مثلا دیگه مثلا سیبزه که سرخ کردن تا آم میگن خورشتان تا آم میگن خورشتان ایمین ها تا آم تا آم اما در اصطلاح فکره هاست در زمان نوزل و قرآن خصوص از ازای خشک رو گفته من توضیحات رو عرض کردم این ظرافت است که در لغت ها هست و از گفتش رو به اصلاح لغت خود تا آم ازای خشکه اما همین ماده ماده تا و ایمانی ممکن است در اشتفاقات دیگر در سوار دیگرش اعم اهم از این به کار برده بشه مثلا به عنوان عرض به اسم جامعه تا مثل گندم چوب این رو میگوتن تا آم میویدیات نمیگوتن آبوشت نمیگوتن خورشت نمیگوتن تمام نمیگوتن به استقای دیگه خوش کردن منچه طول عمر رو بود اون خوراکی رو که میتونه سیرت، فقط یه طولاینه نگاه بذار تاام مثل جو و گندو و خرما. خود انگور رو خورد مثلا و خرما، اما رطب که خرما ایجاد باشه تاام نمیکنه. کشمش رو تام تا میگفتن چون میمون، ماندگی داشت. اما انگور رو تام تا نمیگفتن این اصطلاحه دیگه، هر زمانی رو، او کلیه القوان این اصطلاحه. یک وقت باز اگر در اشتغاق فعلیش دیگه باز این قید نمی کردن. یعنی به اصطلاح تعمی که با عنوان فعله این حتی در آخردن به کار می کردن ما در خود قرآن هسته من لمیت انها فعله هم می بینیم یالود دا، و داود این ها من لمیت انها فعله هم می بینیم اما این به سیغیه یعنی این به اسناد فعلیه اما به غیر اصطناده فیلی به سازه جامعه به آب نمیگوزن تا اصلا به انگور نمیگوزن تا هم به کشمش نمیگوزن تا هم زمان دیگه اصطلاح زمانی رو باید درکن به روتب نمیگوزن تا اما به خورما میگوزن تا درست نکنیم این این که میدید تو ادهان تا این ظاهرن سوال از مصداق رشنه همین که هم تو زمان ما رو هست میگه آ یکی همی روش برینج تایلنگی بکنی که هم برینج ایران ایواندی رو مخلوط آیا کشتایی صدق میکنه کنه امام می اداره یا جمعیت هم فلاوست اگر هر رو با هم مخلوط کردیم، کسی که مثلا یک کپ دست از دنش هر دارو می بینی تایلنگی یا ای این فلاوست و اما اضافه حتی اما تا هم یا قطعه جیزا عربی اما اگر زیدش تایرانگی برازه بالاش بالاشی ایرانی برازه این داشته حالا این عربی که شاید حدیث اطلاع هم نداشته باشه به این اطلاع اصبات اطلاع چون این خرط ما بین تایرانگی تا و داخلی هم حالا پس بنده پس میخیدی به اینکه بروش نباشن اگر دو سه هم حقیقتاً در انداز نگاه کردن نمیفهمم نصفش داره دیگه یا نمیفهمم سی درصد تایلندیه 70 درصد ایرانی ها به برقص عرض میذارم نمیفهم. بعدم نمیفهمم میفهمم تایلندی رو داخل رو باندیه تشخیص نگن ظاهراً حدیث اطلاق نداشته باشه و این میگم حدیث اطلاق داشته باشه میشه گرچه معیار ظاهراً چون هم که مفرد رو یا جمیعاً مراد از در ذهن در اینجا تشخیص داده بشن مرگ این تشخیصی صادر بشه مثلا بكنه که بردا و بفهمه که این 70 درصدش خارجی است 30 درصدش ایرانیه و بالعکس ظاهرا مراد اجمالا اینه یک تفسیر موضوعی است برای قش مثلا اگر جوری محقق شد، مثلا گنده و درجه 1 با درجه 2 مشخیص نیفته مثلا حس میکنه از هر دردانه 5 تا 5 مثلا 4 تا 3 تا 2 درجه 1 درجه درجه خوبه اما این اشتباهه این غش نیست اما در دور زیر گذاشته حالا در چیزهایی هایی مثل فرست که مثلا این که مثلا زردانوی خیلی واضحه تو مادر نگاه میتونه زردانوی مثلا شیش را دروش شده چارتش نیزه این را میفهمه تشفیس میدونه خیلی دقیق نیست براز روایت اونغارکی این هست که مراد تلتال به روی نیست خب در فرمان این بش تلتال جیل روی نیست اون خرطی که قابل تشکیص نباشه مثلا جهید روزی قرار بده جهید روح قرار یا این تبدیلی که من نهارد کردم چون ما اینشالله با با بحث موضوعی هم بکنیم تحقیقته قرشیه اگر واقعا جهید ردی هم شنافتش احتیاج به تخصص داره خرطش هم باز مشکله اون شنافتش احتیاج به تخصص داره پر که مثلا گندم من اجمالا بردم خیلی برندسم یعنی دو عادی با تنو ذهنی فان می‌کنه حالا اگه فرض شد فردی که تخصص داشته باشه واذی هم عارض داره چون مثلا متاری خوشاوند که عاوده کو هستا میری بوده قص به هر حال در نیست که قش تل بکنه ولو خلف باشه لازم به این چیزی که بین عامه مردم قابل شناسايي نباشه در این نیست مطلب این راجع به حدیث اول که معیار در قشو داره حدیث دومی که ایشون در اینجا داره این حدیثی است که مرحوم شیخ کولنی از علی بن ابراهیم، از شیخ بروزکان از علی بن نعک، از علی، ابن نبی عمر، آن حماد، آن الحلبي، این سرایی نه توزید، بی وارد شده شد. از کدیم؟ اصل کتاب کتاب ابن نبی عمر یا کتاب الحلبي هر شیخ ماشی است و همزان مشهور است. و ابراهیم عاشق این کتاب ها رو به قوم برده یا کتاب نبی عمر نوادر ایشان مثلا یا کتاب خود حلوی و حماد هم از کردیم حمادی که این طبقه است حماد ابن عثمانه اگر گفتن حماد انحریز مراد از حماد ایسا اما حماد ان الحلوی مراد ابن عثمان کمانی که مراد از حلوی هم در اینجا جناب آقای به اصطلاح عبیدالله حلبیست چون ما چند نفر داریم که اینا حلبی هستن یکیش عبیدالله هست که ایشون اشهرشونه از کرد این حدیث هم یعنی حلبی هم اهل حلب که حلبی کنان سوری و شامن نه ایشون اهل کوفه است. تاجر بود تجازش به حلب بوده سوری بوده حلبی کوفیه لذا ما برای یه تاریخ حدیث و حتی تاریخ اجازات که نجاشه آمده همیشه یک جنودی رو به دحاظه زمانی یه در ذهنتون باشه تندویی با پایی خوبه مثلا کلیگین ناولی این قصه روایت ایشان خودش قومیه از علی ابن ابراهیم که اون هم قومیه از ابراهیم پدر علی از ابراهیم گرسته که ایشون احل ارام بوده بعد بوده قوم بود احل کوفه ب ابراهیم میریه به بغداد کتاب بنابی عمر بخزار ابن عمری ساکن بغداد بخزار بوده توسط ابراهیم میاد به هم اردار ابن عمری هم میره به کوفه هممات کوفیه هممات ابن آسما حلاوی هم کوفیه پس حدیث قومی قومی بند میاد بغداد از بغداد میره به کوفه بله ایم نمیلawatش حال این که ظاهرت ایشون در مدینه این حدیث از عمام صادر شده ظاهرن احتمال دیگه هم هست که باید توضیحات چه از بکن قال سهل تو هم از رجل یکونو هندهو لونان منتعام تمام واحد و سعره ما شیعان این جایی سمستر ما یعنی کتاب کافی و تحضیب و خرید با هم اختلاف دارن ما هم قرار نیست میگه چونیز خاجحافظ معذور دار ما را و سعره ما شیون هست و سعره همه شرطان شرطا هست به جوی شی... شیعون و قرد سعره همه شرطا این هم هست الان هم دقیقت نمیتونی ظاهرن مرادش اینه که درنگ از خرزه هر کدومشون یک نرخ دارن ظاهرن مراد اینه حالا شرطاز شیعون مثل برنج برنج داخلی هست با برنج تایلندی که قیمه هاشون مختلف و احتمال هم داره به سعره همه شیعونه نرخ هر دو یکیه بیا من هم این مشکل این در این زیدش مشکل این مشکل یعنی مدنش مشکل داره و همه خیرون من الاخر فیصلت همه همه جمیعه سن یهی همه به سعر واحد فقال علیه السلام لا يصلح لها همیف علیه یه باش شبه المسلمین این رو باید به خلاف اون روات قبلی امام می نه این قرشه لایست لحبود افوزالک وقت لایست لحبود افوزالک این لالکی به کلور می کنه باید مشکلیه توی جا لایست نه آمده نفی آمده نفی چی نکنه نفی نکنه یکترات اومان نه رو مخلوق میکنه این کار رو نکنه. یا نفر میخوره یبی او همه به سعر واهر یفراد او همه یبی او همه به سعر واهر لایست لحو لحو دالک اگر لا لحو لحو دالک به بین خود یعنی به این صلاح نیست احتمال بطرانه به ایسوش میده بگرد کردی لیکن فکر میکنم به خلط میخوره و این با اون روایت قبلی با هم یک کمی قول مرا تا آرزاد مای پیدا میکنن و که ظاهرن هر داره اطلاع نداشته باشه. ظاهرن. ایش جمع شد و اون این که اگر واقعا این دوتا رو مخلوط میکنه و آمه مردم نکلی که برد شناس حالا اون هست. برد شناس هستا بگیر داره. آمه مردم میکنه برنج برنج این میکنه برد داخلی است. به قیمت داخلی میخنن؟ این قشه. اما اون روایت این مورد نمیگیره اما اگر از روی یا جمعیه اگر جوری باشه که هر کدام به تنهایی قابل تشکیف و قابل تمریزه اونجا دیگه قشنید یه قشنید یه این شبه مسلمی این در کتاب کافی آمده تحضیح آن و همین احضیح که از کن. در کتاب فقیر آمده روا عبدالله ابن موسان این مراجعه کنم به نظرم سعد شیخ صدو و عبدالله ابن موسان صحیح باشه. اگر آه این کامپیتر داره اون آخر جلد مشیخه و مکان فی عبدالله رو رو در بیاره ان الحلبی ان عبی عبدالله علیه السلام و قارف رجل یک اون این در حولانان در اینجا مرحوم سرون این روایته از عبدالله رو موسیقان از حلبی نمکنی در این کتبی که با آنوان مشترکات نوشتن ادعا شده اگر ما داشتیم حمد عناله البی الله عبایدالله است. اگر آمده عبدالله عمد و مصفح عناله مراد محمد حلبی است. ما از هلبی ها سه چهره طبعه معروف داریم. محمد حلبی و یحیی حلبی و عبایدالله. عشره شن عبایدالله هی. تو شرخ این درنده هم. این سه چهره خیلی معروفه. الله و محمد و یحیی. و اشهر اینها. جناب آبی دل الله. یک مشکلی که را مشکل کنید که ظاهرش به سال سادو بر میاره به عبدالله به محمد عربی، به ظاهر سند کلی بر میاره به آبی دل الله عربی. تا به تمامی یک خلاقی باشیم. قاعده ای که میگن عبدالله موسیان چون شواهدی هم داریم که عبدالله موسیان از یه از آبی دل الله نقل کرده. تو یه نکته نداری؟ مکانهای علایان به حسن ظاهر فرم معتبری کمی ابهام راوی داره طریق کلیمی و شیخ هم که از کلیمی گرفته این طریق ابحام نداره بعد این دو تا روایت شد یکی روایت حلبی شد یکی روایت محمد بن مسلم شد چون این پتر یوبایی نموش آخر رواید داره ما اون بله خب همین یو بیه نهو یعنی چرا یخلطه همه اصلا خلق نمیشون بکنه اگه بیایم اونجا میگه اداره یا جمعیه هم فلا بست مالا بیوغت جهی دو این ناجب به ما و اما همین روایت مضمون این روایت در کتاب دائم ام آمده ام جعفر ابن محمد سوئل خلط تام و بعض وحجاد و منبست فقال علیه السلام خوبه غشن و کره همون این معید روایت حلبیه و از اوه اجردانون بز این هم حسابه شده این معید روایت حلبیه حالا چون وقت نیست که ما این صحبت ها رو بکنیم ما یه وقتی صحبت کردیم کتاب حلبی در اختیار سابده هایم بوده کتاب حلبی در اختیار سابده بوده تاكيداً احتمالا یک نسخه دیگری از کتاب بود آره یک وقتی با توزیه حال صحبت چون پولاد اعتبا شر شده خیلی هم وقت مار میاد خاطر شما رو میاد بله باز در کتاب دائیم علی علیه السلام انه نهل باع، باء جمع بایع پوشنده باء عین پوشندگان نهل باع، یغره و افضل مایه بی انه و یخفی شره این روایت خوب بود که این دوباره تو روایت قبلی رو رو خوب بود توی بابه قشمی رو بودن خود صحابه, صحابه. خود صحابه و باز در کتاب این هم الان این این که نحیه از قش کرده امیر المؤمنی این هر ساله این مکن شرفی شما الان نیست اما اصلش هست و همین تازهی اثبات کرده توضیح دادیم که کتاب قضایی ها و سرانده احکام که در قرمه اول تحدیل شد در اختیار صاحب بوده شاید می از اونجا گرفته احتمالش هست اونجا گرفته میشه باز در کتاب دعایم داره و قدار وینا نهل بیگ از نبی صلی الله علیه وسلم انهو قان از دین از خوب کاری کرده البته این مطلب که از دین از نصیحه شد مشهر باشه باشی که از دین خارج نکنه هم خارج نیست شد. و اعظم بیانش بکنه و, و, مشتری راه و هر دو مطلبش یعنی هم مطلب هر هم دومش دو بند اختلاف معارض داره این شرط دیگه ما خیلی به ما مربوط نمیشه فعلا موردش حدیثی شما لشکر شو از کافی نقل شده علی بن رواه عن ابی ابن ابی عمره انا حماد اهل حلبی الان این بحث گذشته گی الان متعرض این بحث شدیم راجع به این روایت قال سعد ابو عبدالله عن رجل یشئ تهاما فیکون احسن له و ان فغله ان یبلغه من غیر یلتمس لیادتها حالا این تهامشو بیان نکردیم. میگن کتان در زمان اینطور بوده برای اینکه خوب فروش کنه با ترش می‌گردم. چیزایی میگم هست در یخچال هست که وقتی تر میکنن یا مثلا انگار تر رطمی یا حوله تر می‌ذارن این رطوبت رو به خودش می‌کشه تنگین میشه. یعنی جنوب خراسان میان دربار همین کار میکنن هر کی می‌خواد مشیت مثلا از این چیز مثلا به اسم تر می‌ذارن یا یه دونه حوله تر می‌ذارن این به خودش می‌کشه مثلا اگر چه گره میشه؟ چه پنج گره هم زیاد میشه ان رجل یشتری تا آمن فلکون و هستن لحوه هم تا قلع هم یبول لحو یعنی این نوع تحشر اینه تر بکنه این تا رو لیکن منغیر انگیر مثل زیاده هم مثل مثال زرفان که سنگین میشه چیزی که خوشم به اصل اتوبه سنگین میشه فقال امکان به انلا یسله و لازاله راهی غیر از این نداره ولای یمشه و غیرو این فا در این, جا این راهش راه نمیذازه اصلا این جنس بدون تماس کتان اینجور میگن میگن باید تر تا راه بیفته بعضی از انوامش هم میگن که مثلا باید ترش بکنه ببین هر که بازار پیدا بکنه به غیر اهل تماس بی زیاده به دنبال زیادت نیست به دنبال قش نیست به بدون... دنبال ترش همینه باید تر تا جا بیفته است. و امکان این نما یا این نما یا شبه مسلمی فضایت شده اما اگه در مقام کشه دیگه اون کام درست دیست.